اود ورود به همراهان گرامی و آرزوی بهترین ها برای شما داستان شال ترمه را براتون انتخاب کردم از کتاب افسانه های سرزمین من نویسنده جناب آقای خسرو صالعی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی و گوینده این داستان محمد معصومیان روزی بود و روزگاری در یکی از ولایات امیر عادل و دادگری بود که مردم دیار در زیر سایه او به خوبی و خوشی و سلامت زندگی می کردن. امیر بیشتر اوقات با لباس مبدل در میان مردم رفت آمد می کرد و از نزدیک ناظر بر اعمال و رفتار آنان بود و هرگاه از کسی خدمتی یا جرمی می دید حاداش و کیفر می داد. از نظر او هیچ چیز پنهان نمی ماند اون درایت و سیاستش زبانزد خاص و آم بود آن روزی که اون نمیتوانست ظلمی را که به یکی از افراد محروم شهر می شد از نزدیک ببیند همان شب به طور عجیبی دلش به درد می آمد. به حدی که آرام و قرار را از او می بود و همان وقت چه روز و چه شب لباس درویشی می پوشید و در گوشه و کنار شهر پرسه میزد. و هر جا که دل درد او آرام میشد، متوجه می که آنجا باید اتفاقی افتاده باشد نیمه شب یکی از شبها امیر بر اثر دردی که در وجود خود احساس می کرد هراسان و مسترب از خواب پرید و با خود گفت امشب در این شهر به کسی ظلم شده باید او را نجات دهم او با عجله لباس مبدل پوشید و به گردش در شهر و اصراف آن پرداخت گشت و گشت تا بلقره به محل چادرنشینانی که از ولایات دیگر به آنجا آمده بودن رسید کمی این طرف آن طرف رفت و همین که به چند قدمی یکی از چادرها رسید دل دردش آرام گرفت و با خود گفت که در اینجا باید اتفاق افتاده باشد. امیر نزدیک چادر شد و به صاحب چادر گفت که چون غریب است و کسی را در شهر نمیشناسد اجازه دهند که در آن شب به عنوان مهمان نزد آنها بمانند. صاحب چادر موافقت کرد. امیر داخل چادر شد در آنجا پیرزنی، با دختر جوانش که از زیبایی و کمال بهر من بود زندگی میکردند. امیر گفت می کنم قلیانی آماده کنید تا من بکشم بعد سر صحبت را باز کرد تا شاید چیزی از آنها بفهمد. دختر که اسمش ماه بانو بود با اجله بساط قلیان را مهیا کرد امیر پکی به غلیان زد و پرسید ببینم امورات شما از کجا میگذره؟ مادر ماخوانو گفت ما یه ماده گاوی داریم که شیرشو میدوشیم و میفروشیم و امرار ماهاش میکنیم یه کمی هم اندخته میکنیم امیر کرد با خودش گفت شیر یه گا گاو چطوری خرضی این مادر و دختر رو میده گذشته از اون مقداری هم زیاد میارن و پس انداز میکنن شاید تو کارشون حکمتیه صبح که شد ماه بانو گاب دوشه را برداشت و رفت سراغ گاو که شیرش را به اون در حالی که ظرف گاب دوشه را زیر گاو گرته رو به مادر کرد و گفت به گمانم بخت از ما برگشته چون گاو شیر زیادی نداره مادر امیر اینها را شنید و به زیرکی و تیزهوشی ماهوانو افرین گفت و صبح روز بعد از آنها خدافری کرد و به قصر خود برگشت از آنجا که امیر تا آن روز ازدواج نکرده بود احساس کرد که ماهوانو با اینکه از مال دنیا جز یک گاو شیرده چیزی دیگر ندارد شایستگی این رو دارد که به همسری او درآید. روی این فکر چند تن از ریستپیدان مورد اعتمادش رو به خاستگاری ماهبانو به نزد مادر او فرستاد وقتی فرستادگان و ریستپیدان امیر به دیدن مادر ماهبانو رفتند او با کمال احترام گفت که به امیر شوهر نمی کند. مگر اینکه او هنر یا هربه ای بلد باشد امیر وقتی پیام و شرط ماهبانو رو شنید اول نراحت و مکرد در شد ولی چون تصمیم به ازدواج با او گرفته بود شرط او رو که هنر یاد بگیره و دستود داد تا بافتن شال ابریشمی رو به او یاد بدهند بعد از مدت ها امیر هنر شال را یاد گرفت شالی قشنگ بافت و نزد ماهبانو فرستاد ماهبانو هم پسندید و بدین ترتیب ازدواج اونها سر گرفت هفت شبان روز کوه و کمر پادشاهی را شکستند و ماهبانو را وارد قصر امیر کردند امیر به خاطر حرفی که ماهبانو به او زده بود و او را کوچک شمرده بود اصلا به او محل نمیگذاشت. خیلی ناراحت شده بود که ماهبانو گفته بود امیر باید هنری بلد باشد. مدتی گذشت امیر سرگرم کارهای خود بود و همسرش به کارهای خانه می پرداد. در همان روزها در شهر، دکان حلیم پذی باز شده بود و شایع شده بود که حلیم او از خوشمزگی نظیر ندارد مردم برای خرید حلیم جلوی مغازه ثبت میکشیدند از غذا همان شب دل امیر باز به درد آمد صبح خیلی زود لباس درویشی پوشید و به دکان حلیم رفت. وقتی به آنجا رسید دلدردش آرام گرفت دم در دکان حلیمپزی ایستاد و سلام کرد و بعد پرسید گفت اوستا اوستا گفت سلام غلام مولا بفرمایید تو بفرمایید آهای پسر به غلام مولا جا بده بنشیند اوستا میبیند غلام مولا جوان خوبی است چاق و چله است و به درد کار او می خورد. پس یک کاسه حلیم می گذرد جلوی او تا سرگرم خوردن شود امیر با اشتها مشغول حلیم خوردن بود که دکان خلوت شد و دیگر به جز او کسی آنجا نمانده بود ناگهان دکاندار تختی زیر پای امیر را کشید و ناگهان امیر به داخل گودال بزرگی که زیر دکان بود افتاد آنجا یک سرداب نیمه تاریک و ترسناک بود و چند نفری دورو هم جمع شده بودند امیر بلند شد و نشست را از آنها پرسید اینجا چه خبره شما اینجا چیکار میکنید یک نفر از آنها گفت استاد حلیم پس ما رو به این روز انداخته هر روز یکی از ما رو که چلده شده انتخاب میکنه و سرشو میبره و گوشتشو داخل حلیم میپذه و به مردم میفروشه امیر با خودش فکر کرد گفت خدایا خداونده چه میشونمم؟ چه کار کنم؟ اگه خودمو معرفی کنم و بگم که امیر این شهر هستم باورش نمیشه میترسم کار بدتر بشه اگرم سکوت کنم و هیچی نگویم به زودی نوبت خودم هم میرسه. توی همین فکرها بود که یادش افتاد که ای دل غافل ماخوانو به من هنری نشون داده که حالا باید ازش استفاده کنم وقتی استاه حلیم پس به زمین اومد امیر رو به او کرده گفت استاه ما که عباس بیکار نشستیم خسته شدیم داغل یک کمی نخو نخ و تا من برات یه شال خوشگل ببافم اوستا پرسید مگه شال بافی بلدی؟ امیر گفت بله که بلدم شالهایی که من ببافم خیلی هم خریدار داره استاد هم کرد و زود رفت سوال شال بافی رو مهیا کرد و امیر مشغول بافتن شال شد چند روز بعد امیر به دام افتاده یک شال زیبایی بافت و به حلیم پس تقدیم کرد و گفت که میتونی با فروش این شال پول زیادی به دست بیاری اگر به او گفت اگر شال که من میبافن پیش وزیر ببری چندین برابر آن از تو میخرد. آخر من زمانی شارباق وزیر بودم استاد حلیم پس باز تمه کرد و گفت همین کارو می تا پول بیشتری به دست بیارم چند روز بعد امیر شالی را که بافته بود به استاد حلیم پس میده تا اونو به نظر برزیر ببره و به قیمت زیاد بپرشه برنهامم بگیره خفر از این که امیر در حاشیه شال نوشته بود من در دکان حلیمپس زندانی هستم اگر به دادم نرسید منو خواهد گشت. از اون طرف وزیر و یاران امیر همه جا در به در دنبال او میگشتند استاه حلیمپس شال رو بود پیش وزیر اون هم وقتی دید کنار شال مطلبی نوشته شده اون مطلب رو خوند و کرد که یکی سه اشرفی به حلیمپس جایزه بدهند. وزیر هم در همون حال چند نفر از مأموران خود را برداشت و دنبال حلیمپس او رو تعقیب کرد مأموران وزیر به دستور او وارد دکان حلیمپذی شدند و همه جا را گشتند تا بالاخره به زیرزمین زیر, زیر دکان رسیدند آنجا امیر و بقیه را آزاد کردند و حلیم پز نابکار را به چهار میخ کشیدند تا به سزای اعمالش برسد به دستور امیر دوباره هفت شبان روز جش گرفتند و به زن و به کوبی را انداختند و همه جا تعام به مردم دادند امیر با خودش گفت من این زندگی دوباره را از همسرم ماهبانو دارم چون اگر من هنر بافی را بلد نبودم تا حالا از بین رفته بودم پس چه بهتر که هر آدمی هنری یاد بگیرد چون یک روزی دلاخره به دردش میخورد